مجید یاسر، کشایار راد، محشید حبیبی، گیتی معینی مریم خدارحمی، مریم امیر رلالی و انوشیروان هشمند در ثروت خفته کارگردان میلاد جرموز نویسنده فیلمنامه نامه محمد رضا کازمی موسیقی مازیار یارعی تهیه کننده میلاد جرموز روز کنار یکی از بزرگراهای شهر تهران زن میانسالی که عینک آفتابی به چشم زده کنار ماشین ایستاده، و گالون بنزینی توی دستش بود. ماشینا بیتوجه از کنارش رد میشن تا اینکه یه سمند قرمز رنگ توقف یه زن نهجون پشت فاکونه. زن میانسال به ماشین نزدیک میشه. میزنه به شیشه ماشین. زن جوان شیشه رو میاره یکم بنزین میخواستم سلام هم بنزین ندارم خانوم. خب بس من گفتم بنزین شما نگردشیم برای چی نگردشیم موبایل هم بود زمین خواستم بردارم خب حالا که زحمت کشیدین و میشه خواهش کنم یه پمپ بنزینی سر از من اونجا برسونین کار دارم هنجل دارم باید برم همش پن دقیقه تول نمیکشه زنی میانسان سوار ماشین میشه دست شما دردن چه هوای خوبی امروز بله امسال هم که اصلا زمستون نداشتیم باید دیابی میشه اون عینک خوشکره تو ورداری من چشمای قشنگی تو ببینم؟ خواهیش من خیلی موقع رانندگی عدد هم اینک روزنم هر حالا به خاطر من خواهیش واقعا همه چه تموم هستی شما خواهیش بخواهم دست که واقعا بیسته بیسته ممنون آشپزی چطوره خوبه؟ آشپزی که اصلا از هرچی بوی پیازداغ و نعناداغ حالا به هم میخواه این حرفا رو هیچ وقت نزم ببینم فرد پس فرده که خواستی خونه شوهر اگه شوهرت گفت من یه آشتشته میخوام که روش پر از نعناداغ و پیازداغ و سیرداغ باشه میگی من از پیازداغ و نعناداغ بدم میام <تصفيق> من اصلا ازدواج نمیم کنم چرا؟ این یه شطوریه که در خونه تمام پسرهای جوان و دخترهای جوان میخوابه چه بخوای چه نخوای شما بایی که پسر سربراه نشو بدی تو این دور زمان از پسر سربراه که پیدا نمیشه عزیزم بچهش با به تو باز بکنی نگاه کنی پسر سربراه پسر نجیب خانواددار تحصیل کرده کم دور و اطراف شما نیست ما شده هزار ما شما شما هر جا برید منم با شما میام کاری که ندارید بعدش برام کار دارم جایی بس که تیک نکنم بشم دیگه مزاحمتون نمیشه پسر جوان داخل حمام مشغول پهن کردن لنگی رسای زالونه اجال مسیه رسل زامونه مادرام وزندمی خوفم مادرام من ما خودم فراهمش شما برو برس به کار دست درد نکنه گل راستی این آروز سیریشه هست دوباره سر سرکلهش پیداشت الان هم تو بینه نشست من افشار هستم عجبادم سیریشیه عجبادم سیریشه تو رو خدا یه جوی دکش کن که بره دیگه نگیلیمش جلال این خیلی سیریش ها خیلی برده همون <تصفح> سدین جاوشی خیالت راحت برو برد برد خیال برو خیالت راحت باید خیال کنم سریعشام باید بیشترمش کوش که باید خیال کنم ماجید کته شمی پوشه و میره پشت دخ. پیر مردی روی صندلی نشسته. کمی اون طرفترم یه مرد که به خودش لنگ پیچیده. آه... پیر مرد میگه قربان خسته نباش سلامت باشید آقا شما چند دومی بار میایین اینجا؟ آقا مجید این هفتش بار آخری که مندم توی همم این آقای اینجا بوده برسته قربون دهنت توی این هفتش باری که ایشون تشریف اینجا من بهشون جواب چی دادن؟ یادم نمید. دادم؟ یادم نمیان یادم شما یادت هست که ایشون هفتش بار اومده اینجا یادت نیست من بهشون جواب چی دادم آقا جان بی دیگه انقدر کشش ندید قربان فرمودید فروشی نیست تمام الانم میگم فروشی نیست. اگر قیمت کمی پایین و بالا علتش فی بازاره گسش از اون زمینه به این درندشتی رو کسی همچین پولی بالاش نمیده یعنی نداره ای که بده شما میخواین بگیید که این همون رو دست من میمونه بابا باشه مال بعد بیخ ریش صابشه شما بفرمایید بسیار خوب خوبه خودتون رو ناراحت نفرمایید اجازه بدید این ام. کارت ویزیت بنده خدمتتون باشه. احتمالا اگر تصمیمتون عوض شد چیزی اس ندی فقط عقیب زنگ بزنید. متشکر. بفرمایید. تیرمرد یا آقای افشار اصرو صندلی بلند میشه و میره. تا باش ور کارت تو تموم میخوام ببندم آقا. یه دوش دیگه بگیرن اونجا. یک. وای. باشو باش ور دوشتو بگیر میخوام ببندم زود بیا تمومش سپر. مردم از روش بلند میشه از خلاص میشیم جیغ این و اما زن جوان از ماشین پیاده شده و در ماشینو باز کرده و کنار خیابون ایستاده خانم محترم لطف پیاده شید ببین اخلاق شما هم این افراد خود منه برای من هم رو هم. هر روزی ما دارن هر کاریش میکردن خوشحالونه بره بیرون انگار نه انگار همش چسبید به صندلی و تکون نمی کن. خاله من عصبانی شما داریم برای من خاطره تعریف میکنیم بفرمایید من باید برم کار دارم عزیزم قربونت برم حالا امروز ازدواج میکنین فردا که باید ازدواج میکنین که حالا با پسر من نه بالاخره با یکی دیگه که باید ازدواج کنی اینم قبولی نداری خاله معطل نشوین پیاده من کار دارم زنی میانسان از ماشین پیاده میشه عزیزم قسمتی که اخیری داری اینی که دروغ نیست هرچی به خاطرش بیاد میاد به سلامت به خانواده محترم سلام برسید زن جوان سوار ماشین میشه با راه میفته عجب روی داشت ول نمی کرد اه. که جا وای. مجید و مادرش سر صفر نشستن رو داان غذا مادر امروز پشتدی رفتی بیرون یهتونونه کلید از تو کلیدت بر من بسست. دوباره کلید گم کردی؟ آخه مادر من تو ای ما این دومین این شما کلید گم میکنی حواستون کجاست مجید این را سر به سر من نزارا من نمیتونم تو چرا از این نمیزدن مگیریم <تصفح> هی من برد بشورم و بساقم و بپزم بذارم جلوی تو تمام لخشکاتم از تو حیاط جم میکنی خودت میشوری فهمیدی چی گفتم من دیگه خسته شدم دستم هم همه آتروز شده چشم اصلا چشمم کوه. وزیفمه. چهار چارت کلید از این کلیدم میزنم میزنم بومیز هر موقع دوستاشی کلید گم کن هر موقع دوستاشی از این کلدار می‌زنم همین برده شما خوبه تمام همسنوسالای تو پاشو دارن ازدواج کردن هر کدوم دو تا سه تا بچه دارن اون وقت این حسات نبه بعد رو این دل به شده من بمونه مادر من نیست که برم تو بازار یه یه پیرم صحبت یه عمر زندگی من بعد یه همسنگ خودام به دوران یا نه این همسنگ چی توزیگ یاد گرفتی همسنگ قودام خودم خودام نهاتی که خوردی سفره رو جمع کن ظرفا رو هم ببر بشور چاش من بهم کپ ماگام بزن میخوام استراحت بکنم مادر میگه باره تو موسیقی بزنم راحت بخوابین بدم دل تو حمام خرشید خانم یا مادر مجید با عصبانیت از سر صفره بودن میشه و اما زن جوان داخل ماشین نشسته و حد داره داخل کیف پولو میگرده یه دفتر تلفن پیدا میکنه مجید خاله، مجید خودمون. تلفنش رو جواب میده هلو سلام بله بله خودم هستم. یه کیفز ماشین انجام مونده بله باید کیف مادرم باشه شمالت توی مدرسه رو بگیین نه خودم میام خدمتتون مادر مجید تو یه حیاط داره رخت بند می کنه. سلام سلام سلام سلام. سلام. ببینم من به تو مگه نگفتم رختاتو بشور بندازو برد زرد کنن بشور بله همون که ول رفتی مشکل بده تمام دستاتو از ازو برد تمام مجی دستتو چو مادر ازو برد تقصیر منه که خبر خوب واسه ادوردن ببین حوصله اصلا ندارم ما کیف شما پیدا شد پیداش کیف من پیدا شده با همین راحتی کجا بوده یه خانومی به من زنگ زد گفت کیف شما تو ماشین ایشون جا مونده راست میگی آدرسم گرفت که الان ببر کیفو بده نگاه خوب قسمت رو ببین کیف من باعث تو ماشین یارو جا بمونه و من خودش با پای خودش بیاد دم در کیفو به من بده عجب ماما جون من کیفو جا گذاشته بودی یا جا مونده بود میگم به عرفا که بابات نه جا مونده بود من که عمدن این نکرده بودم که دستتو بردا مادر مامان صدا بعدا من چی خواستم بر من افتاد یک ساعته دارم به تو میگم دستت بردار خب زحمتم دوباره که ازم ببرم nerve شوم اما دستت تو چخاک تو سرم بریزم پوچو نه گفتم خب میگفتیم دستم داشتم دیگه ساعت دفعه میگم دستت از می این حساب شده بردار آروم گفتید فکر کنم آروم گفتیم خری خب خب چیه فکر کنم اومد برمی ما مورده رو با کار تو خولست مارم برمونم دار ببینم که برمی که برمی که برمی غلط کرده بگفت یه بندون دهنه تو برمی که مجید در رو باز میکنه زن میانسالی پرده درمی سلام سلام پسرم سلام این کیفتون رو گم کرده بودیم. ما برمی که خدمتون کیف تو ماشین شما بود؟ بله. چه جاله؟ چی چه جالب ها هیچی ببخشیتی کیف متعلق به مادره باید صداش کنن صداش کنم مامان یه خانومی در در خونه باشه شما کار دارن مامان باید من بایدتون برم بله ببخشینا سلام علیکم اه، سلام علیکم حال شما خوبه؟ خیلی ممنون شما خوبه خیلی ممنوع کیفتون که گم شده و بردم خدمت تو. بله بفرمین تو خیلی متشکل فقط نگاه کنین کنی. توش بباشه ترستو خانوم خود چون تشفهی برده نه دیگه اون نا آخه آخه من با اجازتون برم باره دیگه باقا چقدر رو بخه مادره درشه میری اهه اه برم برم خب باره دیگه مخم رفت مجید جان بله اون سویش ماشین رو من بدم من میخوام بیرون, بیرون کار دارم خب اجازه میدی من برم بباشه ولی من واقعا دیگه مال میشم برو گفتم بافتم میره. به بخش پرستو جون چه نایمدن؟ نه دیگه اون خونمون نایمد ولی واقعا خانم بهتون تبریک میگم چقدر دختر نازنینی دارین چقدر مردمداری، چقدر مؤدب و متینه واقعا بهتون تبریک میگم شما لطف دارین خیلی ممنون ولی خانم اون دختر من نیست اون از بچگی مادرشو از دست داد من بزرگش کردم الهی بمیرم یعنی این پرستو خانم مادر نداره. نه خیر. آخی بندور. خدا رحمتش بکنه خب تشریف داشته باشین من ببرم برسونمتون دست شما در نکنه چرا تارف میکنی؟ نه باور کنی آجانس کردم سر کوچه سلام رو برم خب دست شما در نکنه دست شما در کنی خیلی خدا نگه به سلامت زنی که اومده بود دم در تا کیف و تحویل بده میره مادر مجید میره داخل خونه او درمی بنده ماشین توقف میکنه و مادر پرسو از ماشین پیاده میشه و جون شروع میکنه به صحبت کردن مادر مجید ظاهرا با ماشین مادر پرستو رو تعقیب کرده یه ماشین گرم قیمت میاد داخلی بوچه چند سانیه توقف میکنه و بعد دنده اقف میره بابا شام منتظره تونیم نمی من اومدم دوتا از طلب کارا دم در بستدن مجبور شدم ماشین ببرم آقا آره دلت شور نزنه بامیستم وقتی اینا رفتم میان خونه الای بمیرم پاپی ببین آخر عمری به چه روزگاری افتادینا زبون تو گاز بگی دختر آخر عمری کدومه همش پنج و شیش سالمه <تصفيق> شما که گفتی شناسنامتونو چند سال دیرتر گرفتین خیلی خوب دو سال تا سه سال هم میشه 59 و نه سال پنجه نه سال سنه میگرم چی شد, شد دیر گرفتن؟ عجب گیری افته ایم. دختر حالا وقت این سوال هاست خدا حافظ جیل داده میگه سنه چر صبح پردا مجید داره کفشش رو باید مجید جو. با کسی قول و قرار نذاریم شب میخوایم بریم یه جایی مادر من این خانواده با این همه خدم و حشم به ما دختر نمیدن تمام مگه چون چرا دختر نمیدن خدم و حشم کیه؟ اونام عین ما مام عین اونا اصلا نگران این مسئله نباش چشم این دفعه فقط به خاطر گل روی شما تمام دلهای قربونت بشه ما مجید اقب اقب میده و پاش از روی پله <تصفيق> سر من بکنن تو مگه چشم پس کلت آخی ببخشید همین مزهر نخواه همین حالا تمام دهنتو ببند ده... مادر مجید میره داخل اتاق چیچک و پدر پرستود داخل اشباس سلام شکر سلام صبح خیر آقا جهانگیر دستت در کن یه چای با سمان بریز ای بریز چاش جهانگیر میره به طرف گوری خوبه؟ نه بابا اون خیلی پر رنگه فرلا آقا صبح بخیر فرلا فرست کنم دست در نکنم خیلی ممنون پیچه ایک دوباره که گردم برد منه انداختی ای بابا اینا مگه چه قابلی داره اینقدر گیر میدی چه فرقه میکنه که من بندازم یه تو بندازی یه چای بس من برس آمه جانگی دست در کنی یه چون موسیقی پرست رو جون بریس بابا در شب که اوندی نمیدونم یه تو ماشی خوابم اکتی دیدار شده میکنم تلاف داره رو حتن تو این بری که نمیشه باید یه فکری برای این طالب کارو بکنم. یعنی میز چی چیکار کنم؟ ماشین رو پوشون. خونه رو پوشون. حسو به باد بدم. به, فکر به یه فکری میکنم دیگه. همه امیدم به جایی یه قولایی داده. حالا ببینم چه کارو میکنه. مجید مادرش از ماشین پیاده میشن. مادر مجید دست به گوتیه دستشه. مجید لگد میزنه به ماشین. سروازت رو درست کن برید. مامان جون. یه دقیقه سب کن ببینم اینجا کجاست اسمارو آوردی؟ اینجا منزل پدرزن آینده دیگه مادر من آخه چه فکری کردی منو آوردی اینجا؟ اینا جنازه دخترشون رو دوشه و نمیذارن تو چی داری میگی؟ چه دستی دست کم میگیری خودتو؟ اینقدر اصاب من را نروها؟ ها خواه که بابا من نمیام ما بریم دست از بود درست بود برگردیم تازگی شانس میبرم با لغت نندازم بیرون من رفتم مادر من من رفتم من رفتم ماجید چی؟ ماجید جی دنبال با, با, با عصبانیت سوار ماشین میشه و کمی بعد ماجید سفر میشه چه فاشه سفر میکنم همش حرف فردا مادر مجید چمدون به دست با عصبانیت از خونه میاد بیرون باشه باشه کجا می‌خوری شما کجا می‌خوره کجا می‌خمه بله میخوام 5 6 روز برم شیراز میخوام برم خونه خواهرام از دست تو راحت شم من چیکار کردم من چیکار کردم چیکار نکردی ها باشه قبوله قبوله فقط یه شرط داره چه شرطی اینکه که شما خب من چی شما نه اون اون اون چیه اون چیه اون, چیه؟ اون, اون نه، اون نه خوشه؟ خوشه؟ ما. حمام چی یعنی من شما من شما به این نتیجه میشه اصلا من دهنم میوادم اوه تمام من قبول میکنم که بریم خواستگاری خوبه خوبه مجید بله راست داری میگی دیگه راست راست باور کنم حرف تو باور کنم سایه ها هم سایه ها خیلی خوب. باور کن بریم من ببرم نمیخوام بده من ببرم خودم میبرم فقط سس <تصفح> دوتایی بر میگردن داخل خونه و مجید در میبنده از اون روز مجید و مادرش با یه گل دیگه رفتن دم خونه یه پرستود یه کته چلیه اینجوریه؟ اونی پاپا؟ ناسلامت مهندسیم چیچک گوشی آیفون برم داره کیه؟ برشت برای امر خیلی اومدین بگی برای امر خیلی اومده پرستو از داخل آیفون بیرون رو نگاه میکنه کیه بیا دیدی چقدر تحویل گرفتن؟ این که همون خانوم همون که کیفشو رو تو ماشتر من جا بزاشته بود ای. ای ای. راست میگه خودشه مامان جون بیبری کن بیبری ب جون ما تقصیر داریم که سرزدی پا شدیم ولی خونه اینا اه ای. تو هم اینه بابا خدا بیامرزه اچی اون خوابیده تو رو رفتی؟ هی مادر تو چقدر خوش خیالی؟ هی چیکار کنم در باز کنم یا نه؟ چی چی رو باز کن؟ بگو ما اینجا دختر دممه وقت نداریم بره بابا خب بگو بیا تو اشکالی نداره که یه ساعت دوره هم میشینیم حوصلم اونم سر نمیره بعد هم میره. مادر من من دیگه بیشتر از این نمیتونم خواه خفیف بشم. خفیف دیگه چیه؟ تو هر روز بدی چیز به معلومات اضافه بشه؟ خفیف همون زلیله زلیل, زلیل. من نمیتونم زلیل زلیل زلیل چی؟ مجید با تو خجالت بکش ما با زشت خوبیار نداره مهمونه ها پیچک جون مهمون کدومه خاستگارن میشه ببینم بس نماد خود با میگم این همه خورشید خانونه دیگه من چه میدونم حالا به لخره در باز بکنم یا نکنم چی رو باز کنم؟ بده به من الو بله بله منم خب ببخشید محتر شدید بفردید تو در باز میشه و مادر مجید میره داخل او او او او. چند دقیقه بعد مادر مجید با اجله از خونه میاد بیرون در حالی که نصف دستگلش رو سگی که داخل حیات کده گاز زده تمامو نگاه کن چیکار میکنه؟ حالا، حالو. همش تو بیست سال که عین داره که نمی یکی پایین و عبورتون ببرم. بیا. کردن، خفیفمون کردن، ذلیلمون کردن، رفت بالا. رفت بالا. رفت مجید داخل کوچه نشسته روی صندوق ماشین. و به مادر مجید میری داخل و اما پدر پرستو و مادر مجید خوش سلامت چی خبری بابا؟ چیزی نشده که؟ ببخشید من شرمندم بی موقع مزایم شدم این چه حرفیه میفرمایید؟ اینجا خونه خودتونه این گوره رو فکر کنم بلوتوس خورده درسته؟ بلوتوس چیه؟ <تصفيق> سگونه اسمی که دخترم برای سلیمون انتخاب کرده بلوتوست. مگه این سگ شما همون بر برای خودش راحت میچرخه اینجا؟ بله. و عالی این خونه آشناس. این خطرناکه ها. خب امروز دست گلو می‌خوریم و فردا خدای نکنه یه بلایی سر خودتون میاره حق با شماست. باید یه فکریم هم برای این موضوع بکنم. بفرمید که آقا داما چه تشریف نمیبردن؟ ولالم مجید کار داشت، عسخایی کرد. کار دفعه دیگه در یک موقعیت خیلی خوبی من خدمت میرسم خدمت از ما همسرتون چیه؟ مشکل کاری برایشون پیش اومده یا سفر هستن؟ والا ایشون فوت کردن عمرشون رو دادن به شما واقعا متاسفم ببخشید نمیخواستم شما رو ناراحت کنم خدا رحمت شما کنن. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو ببخشید اسم شما چیه؟ جهانگیر هستم بله ببخشید من یه لحظه الان میام خدمه. ای بابا با. گرفتن نشستن چرا نمیای نی بیروزشته امبرن اصلا حرفش هم نذارین یه سینی چای بگیرم دستم برم اون وسط وایستم که همه اینجوری زل بزنن بهم بیچکوم یه چندی چای بعدی بیاد ببخشید ها من که نیمدن که بیچک جون شما اون قضیه رو خیلی جدی گرفتی نا خواسداری کدومه واقعاً که باشه بیا، پیچه کنگی چند جایی وردی آه پاپی پاپی چیه برای اون ماشین امرو ماشین خواهر من درمی تو تیچو چلاه با مانی من؟ درانستو برد کن کار از تو و چیچک از اتاق میان بیرون برم. چیچک چای تارف میکنی خدا به شما ببشه این دختر رو شما ممنون جلو قسمت و تقدیر رو هیچ چی نمیتونه بگیره دقیقا همینطوری که میفرمایی بر بر سلام خانم کنیم سلام خورچه دست شما درد نکنیم زحمت. خیلی خیلی ممنون خب این شما خیلی خیلی متشکی خب عروس گلم از خودتون تعریف بکنی از تحصیلاتتون الان چی دارین میکنین ادامه درست دارین ندارین آخه چی بگم خب بگو بابا جان بگو سربوزی رفتی نرفتی تحصیلاتت چقدر <تصفح> آخه جانگی شما خیلی شوخ هستین. شوع خدا بیامرز منم عین عین شما بود تو هر مجلسی که می‌رفتم هیچکی دلش نمیخواست از پای های این بلجک شما لُکس درید حالا شما یه مقدار از خودتون بگی بالا تا اونجایی که میدونم من خودم سربازی نرفتم بله ولی خب آقا مجید معاف شدن به خاطر اینکه می‌خواستن کفالت بگیرن دیگه معاف شدن واق چه حیف شد پاپی جون چون من همیشه دوست داشتم همسرم حداقل سربازی رو رفته باشه اونم با اضافه خدمتش نه یعنی که آقا مجید که معافی گرفتن به خاطر کفالت افشار پیرمردی مردی که داخل هممان بود خونی پرستو داخل ماشین نشسته یه دفعه چشمش به مجید نفته یه نیچی امتظار همونی اینجا چی کار یعنی چی مادر مجید میاد و سوار ماشین میشه. مجید ماشینو گویم میده ماما ماما ماما چرا باز میکنی؟ ماله؟ چرا ماشینو؟ اجبایی بیده بزیده رو بیافته تو دور افشار رفته خونه پدر پرستور جهانگیر روی تردمن داره ورزش میکنه صحبه او افشار چشممون روشن این برا؟ چه خبر؟ چیکارا کارا کردی؟ والده چی بگم؟ ظاهرا خبر ها پیچه شما هست خب آقا جانگی تازه چه خبر؟ من دست میدازی؟ من به تو میگم چه خبر؟ تو از من میپرسی؟ مسخره میکنی؟ بی خود کشش ندهه من دیدم داشتن میرفتن کیا داشتم میرفتن؟ آها <تصال> فکر کنم منظورت خواستگارای های پلستو هن نبود یه یه جوری دست به سریشون کردم رفتن پاست داره کشش میده خواستگار کدومه من اونا رو میگم که دم در خونه بودن عزیز اونا به کش کش میکنه خب بگو چی دیدی یعنی تو نمیدونی پسر همونیه یه ساعته که دم در خونه واسده بازم کشش میخوای بدی پسر همونیه به بعدم با اون خانمه که از خونه اومد بیرون رفت سرکن ببینم داره جادر میشه یعنی میشه پسر همومیه پسر هم خوشید خانم باشه مهم. یعنی تو نمیدونی نه یعنی بی خودی همطوری روح هوا به هم رب پیدا کردن یعنی میخوای منو دور بزنی آره آقای جهانگیرخان خان بی خود کشش نده فیلمم بازی نکن که من خودم آپارات یه دقیقه در نوز در جگر بذار آقای ما پاراچی بسی ببینم خب اگه اینطور باشه که خیلی خوبه بسر همونیه حالی شد برستو برستو بابا آه. صبح بابا، مادر مجید دوباره مامان. در بیشتر از آره با. آهش بخورم. آهش بخورم. <تصفيق> و اما پرستو و پدرش سر میز صبحانه. اصلا فکرشام نکنید. چرا نمیفهمی دختر؟ الان از یه فرق کرده. الان قضیه شده هلو برد تو جلو به <تصفيق> همین راحتی بابا یعنی واقعا به خاطر یه تیکه زمین ناقابل میخوای دخترتو بده به یه پسر آسمان اولا کی گفته تو زن این پسر آسمان جل شد؟ دو همه همچه هم بابا یه همون داره کلی قیمتشه اگه نمیدونی بدون؟ به من چه ربطی داره؟ چی چی رو به تو چه؟ بس به کی مربوطه تو عزیز من؟ نمیگه به من چه؟ تو هیچ میدونی اگه طلبکارا بیان من بیچاره میشم؟ بد بق میشم؟ میگه به من چه؟ شما که از طلبکارو مهلت گرفتین حالا تو اون موقع یه کاری میکنیم دیگه؟ هیچ میدونی خورده چقدر پولش میشه فاطهه من خوندن تو فقط کافی چند روز به حرف من گوش بدیم کارا که اوکی شد یه ایتالیا دختر گلم مهمون بابا بزن بری. چطور؟ بابا دیدی دروغ دی دی گفتی تا که ژاپنه تو که میدونی از اول من جغرافیام ضعیف بوده من با ادبیات حال میکردم پاستو پاشو به پیچک اون یه زن بزن و از اون طرف کشمکش مجید و مادرش رو اون نشین نشه کلی شکستنی توش گذاشتم تا شبم که اینجا بشینی چون وقت بزنی، من اینجا تو این خونه موندنی نیستم بادر من اینقدر عصبانی نشد شما یه دختر پیدا کن که همسنگ و همه من باشه من باشه زبایت کنم کنم روی توکمه دوتو شم الهه این همسنگ همسنگ تو اون کاسه سرت بخوره که دیگه من دست تو را هر بشم اینقدر اون موازه کچه همچی خودم تلفون میدم نمیتونم سلام خودم جواب میدم خودم جواب میدم خودم جواب میدم خودم جواب میدم خودم جواب میدم ببخشید جانم جدی میگی قبول کردن وای خیلی خوشحالم کردی پیچک خانوم شیرینی شما پیش من محبوس دست شما درد نکنه میبینم ان شاءالله خدا حافظ شما نجید قبول, قبول کردم خواستگاری بناس بریم خواستگاری قبول کردن قبول شده هم خواستگاری کی؟ بابا پرستو دیگه همین کی کیف منو پیدا کرده بود مادر من من چند بار بگم این دختر همسنگ ما نیست ای یه بار گفتم اما بیه هفش نزم کی؟ شون دهن تو ببندی آه. اینقدر همسنگ همسنگ و تمام تمام من نکنی همینی که گفتم به پامیشیم را حتی آسودی میریم خواستگاری تمامش میکنی میری مادر من من ده بار گفتم یه بار دیگه هم میگم این دختر اگر بیاد دمی این خونه بال بال بزنه از من خواستگار کنه من قبول نمی کنم. مادر هلون. مجید چمه دون به دست میاد اصلا می نه نه اصلا خوردو خواهی از دستتون سما پس دار بله میخوای تا ترمینال برسونم اتون؟ بله نه منظورم این بود که اگه اجازه بدید تا ترمینال شما رو برسونم خجالت دارم کشی تو چش تفید؟ خوب فیلم بازی میکنی بر من به همین راحتی فکر کردی منم به این زودی خام میشم آره؟ اون وقت جنابالی سرخود بری برای خودت خواستگاری و یه زن بگیری ورداری بیاری سال بعد که بعد نومدم خونت بگی این همسرمه ای اینم کیانوش بچه آره کور خوندی بابا چرا اینقدر عجله میکنید مادر من به من دهن تو چاشو <متصفح> اون دستا تمیزه بله تمیزه الان شست چمنونو برده بیا تو نمیخوای تشیفه بری؟ بابا مجید چمیدون رو میگیره و میذاره داخل در خوره رو میبنده و خوشت در میسته این که خالیه که مامان ما هم رکب دیگه میبازی میکنم باید نباساش از روی زمین جمع میکنه می آقا مالن من بابا در رو میبندی؟ در رو می بندی. یعنی من برم، یعنی برم زندگی. آ یعنی لباس که اومد دیگه یعنی زندگیم اومد. یعنی منتظر یه چیزم بیاد. منتظرم. حموم. یعنی من. چه خوام؟ یعنی دیگه من برم دیگه با این باشه میرم. علی هر چی دیگه آچش این حرکت درسته خدا آفز مادر مادر مجید داخل اتاق داره با عکس پدر مجید حرف میزنه خدا اصلا تخصیراتو بگذاری مرد آخه برای چی گذاشتی رفتی این بچه نجبازو انداختی به من با اصلا تو پوتشری بهش بلفتی بازه یه حسابی از تو میبرد از من که اصلا عبد سه سالم از که اصلا به خواهر من نمیای نمیدونم چرا نمیدونم چی کار کردم که دیگه به خواهر برم یه مادر مجید تلفن رو جواب میده. الو. سلام پیچک خانوم. حال شما خوبه؟ من خونه شرمنده. ببخشید تو رو خدا. آخه شما تلفنتون نداشتم بهتون زنگ بزنم. ولی چی بگم؟ مجید یه تصادف کوچولو با ماشین کرده مجید داره رانندگی میکنه که یه دفعه با یه ماشین تصادف میکنه بسمه ز... وای راه به یه ماشین که یه خانومه از ماشین پیاده میشون میزنه به شیشه وای چه کار کردم اه, اه. بله حواستون کجاست؟ اتفاقی افتاده؟ نمی‌بینی؟ بله بله حالا بله بله بله دیدم حالا ماشینتون بیمه است؟ بله؟, بله بله بله نه نه چه یعنی وقت نشد که بیمه کنم. قبول دارم که مقصرین دیگه. قطعاً قطعاً من مقصرم قطعاً من مقصرم چون اه برخورد اه من از پشت زدم به ماشین شما بله من مقصرم قبول دارم چون قط هولی که گواهی نامه ندارین ها گواهی نامه نه دیگه اون رو گرفتم من ده سال یه روزم بود که رفتم امتحان دادم به مدت ده ساله سالی رد شده ولی خوشبختانه همین یک ماه پیش گرفتم بله اینجاست این شما اجاره نکنید گواهی رو به من بدین و چاش آه گفتم این برای ببخشید اه بفهم باش بفهم اینم کارت من دست شما در نکنه شماره من هم روش هست بعد یه دو سه روز دیگه قرار میذاریم که هزینه ماشین مشخص شده بشه اه، ببخشید اه، فقط به خاطر این که خانشن نباشه من چون صافکاری آشنا دارم اگر شما دوست داشتین که بیارین اونجا دوستای من درست کنم ماشینو موردی نداره باشه خیلی هم خوبه پسیلوت کنی برای فردو باشون قرار خدا چشم خدا خدافز, خدافز زن جوان سوار ماشین میشه با میره به موخ چرا اینجوری شدم آه. چقدر مهربون بود واقعا و اما صبح روز بعد چیچک و جهانگیر پدر پرستو با گل اومدن خونه مجیدینا میگم شاید نیستن خونه صدا میاد خانم یه دم تعمل کن اومدن. سلام علیکم سلام خانم حال شما چطور؟ خانم سلام, کرد. سلام علیکم روز شما بخیر بارد. خیلی ممنون متشکرم ببخشید زنگتون خرابه زنگ که والا مدت ها خرابه مجیدم که اصلا به فکر نیست <تصفح> هر کی زنگ زدیم بیدیم هیچ خبری نشد بارد. مجبور شدیم در بزنیم ببخشید toro خواهش شما ببخشید بفرمایید باور بفرمایید دیشب که متوجه شدم آقا پسرتون تصادف کرده و خیلی ناراحت شدم الهی من نمیرم الهی نمیرم باور کن تا من اشکی این مرد نمیده بود آخیش نانت نکنی خودتونو افرمال شدم در یعنی قرار بود همون دیشب خدمتون برسیم گفتم شاید دریم استراحت میکنید مصده نشد این شد که الان خدمتون رسیم بفرمین چشم خواهش میکنم درزم قابل شماره نده درگ سبس خیلی من بود بفرمین شماره درگ سبس خواهش بفرمین بفرمین پدر پرستو و چیچک میرند آخه وای خوشیت خانم چرا زحمت میکشین ما بدیم یه دقیقه خودتون رو ببینین بفهمم ليشینی کاروش بکنم بفهمین دست شما درد نکنه خواهش میکنه خوشاجه میگن آقا پسرتون خوابه یا هنوز از بیمارستان مرخص شدن از بیمارستان مرخص شده ولی رفته تا بیرون یه کایدار برمیگردید پرستوجو چرتش نمیبردن ما رو قابل ندونستان چه حرفی میفرمایید اتفاقا خیلی خیلی دلش میخواد بیاد مون تا میدونی یه شرکت و این دختر. باید یکی باشید سر سامومه این شرکت بده بله خب مسئولیتم خیلی سخته. بابر کنی خورشید خانم دیشب تا به این پرستوها پرک به هم نظر اینقدر ناراحت بود که چرا شما نیومدین خیلیم تو روحیش تاثیر گذاشت الهی بمیرم بیچک خانم میگه آقا پسرم تصادف کرده خلادختی یه حرف آقا جانگیر چرا پدر مجید که میدونین فوت کرد خدا شما به جای پدر مجید از دیشبتاله که لفته نیمده یه زنگم به من نزده که من از درشوره در بیاری من متوجه نمیشم مگه بیمارستان نبوده یعنی تصادفم نکرده خب که جای خوشحالی داره. یعنی ببینم میتونم یه سوالی از شما بکنم بفرمایید. روک و پوزکنده هم این قضیه چیه من هر دفعه با مجید صحبت کردم به صورت درد دل به من مرگشته گفت مامان، این خانواده بعضشون خوبه پول دارن به ما نمیخورن هم. حالا متوجه شد، هزی هر میگه خانواده زن بگیرم که همسنگ ما باشه درسته شما این همسنگو از کجا میدونی این کسان تکی کلام مجیده رشید خانو بالاخره ما دوران دورانو پشت سر گذاشتیم دیگه من نمیدونم دیگه باید برای این بچه چیکار بکنم پدر تناسب از روش بلند میشه کجا به این زودی بفرمایید تو رو خدا حسم خدمت بفرمایید پیشنا بعد شما بشید استادم تو حریظت رو برای شما میگم خوش خانم من تا نمیدونم از کجا شروع کنم بفرمایید ما هم از خودتون بدونی میدونی چند ماهیه که من وحشت شدم یعنی همه اون چیزایی که شما دیدیم باید بفروشم بدم درست طلب خواهی ایبی نداری حالا باید چی کار بکنیم ما شما میگی چی کار کنم باید بیان بگردم با این وضعی که برام پیش اومده همین دوره برای خونه پیدا کنم بیشینم و دخترم زندگی کنم راست میگی؟ اتفاقا مجیدم خیلی خوشحال میشه خوشحال برای چی؟ خب بالاخره من و مجید میگردیم تو همین محله براتون یه جای پیدا میکنیم که شما هم نزدیک ما باشین شما لطس دارید بهتر از اینجوری؟ البته شما میفتید تو زحمت ولی فکر کنم پرستو با شنیدن این صحبتو خیلی خوشحال میشه سر درصد. مادمه مجید اومده دنبال مجید سلام علیکی سلام ببینم تو فکر نمی کنی آدم دلش هزار یک جو میزنه؟ می زنه کجا بودی؟ موبایل تو چرا خاموش کردی جواب نمیدی؟ شارژم شارجم تموم شده بود تازه جایی نبودم که تو همین همون بودم. اینجا گرفته بودم، خابیده بودم. تو همون جای خوابیدنی؟ تو یعنی خون زندگی نداری؟ بیام خونه که شما به من گیر بدین. باشه چش، آقا مجید چش. می‌گردم یه دختر پیدا میکنم که همسنگ خودمون باشه. دیگه چی میگی؟ ها؟ جدی میگی مامان؟ خب اجازه بدید من کارمو انجام بدم، سری میام خونه. شما تشریف ببرید، من راستش دورا چیزی نمی‌خوام براتون بگم. نخیر. تا تو برگردی من میرم خونی یه چطه میذارم تو فقط سرور کباب بگی بردی بیار تمام بمندون نهل تو باید نظر باز باشه درنام تمام بروزر تربیه خونی خدافز برو کباب میگیرم اما پدر پرستو با کمک کارگرات داره اصب و بساسیه رو از پشت وانت خالی میکنه ام. اون طرفش رو بگیم کسی موازم باشید بله یواش بذاریش باید خوبه خوبه شما میخوایید ببرید تو. موازم باشید به دردیوار برو تو زور برگردیوار بله خونه خیلی کثیفه. آش از خونه‌ش که دیگه نگو چنده شاوره. یعنی چه مگه ما اومدیم اینجا با آدم اون بمونی؟ بابا تو سرود دندون سر جگر بزور نخشامون که گره منو می‌ریم. حالا نمی‌شد یه جای بهتر معنی بیاری؟ وقتی میشد که می‌رفتیم. گورو مواظب باش نزن چیزی بهش کنه. دو روز بیشتر اینجا نمی‌مونیم. گور خونه خالشه. آقا چرا معطلی شب شد قربونه. زود با. بیا بیا بازیب و همراهی خانمی که بازش حس دوختن دارم افتادن صاف کن. آره. باشه. از آخر کنم. وار کرد. باهی جزات. نه منو قسم باز بود گفتم بحث لا اگه مسیرتون هست من از اوطوبا میرم میتونم جایی برسونم نه نه شما از اوطوبا تشریف برید من ترجیح میدم از شهر ببخشید ماشینتون اگر دوباره تصادف کردی به من زنگ بزنید باجزات به سلام ای هیچ خانه چاپون سفر ماشین میشه اون. چرا من اینجوری شدم؟ آخه این جم سنگ من نیستا. مرغش. مادر مجید سینه قصاب دست اومد دم در. سلام، سلام مادر چطوری خوبی؟ خوبی؟ ببین برو صفرار بینداز من الان برمیگردم میگردم. جا داری میبری این رو؟ این خونه همساییت امروز اسباب کشی کرده بیشارها خسته و کوفته. دست نزن میام اقید دل بازی در نیار دیگه ها. برم یه لغمه غذا بدن اونجا برگردم برو. ماما جا زود برگرد که دارم این گرسگی میمیرم آن الان میام برو, می برو. برو. خاطر تریف کنی آن برو چشم ماما زود بیای داخل خونه. اینجوری شدن تاالاشی اینقدر فکر منو مشغول نکرده بود او که با اون ماشنش اصلا هم سنگ من نبد مادر مجیک بر میگرده خونه دیگه کردیم من چیز خیلی تشکر کردم خیلیم خانواده نازنینی خیلی با فرهنگ با شخصیت هرچی برات بگم کم گفتن آه. همه اینا رو با یه قضی دادن با سینی فهمیدیم ببخش ما یه انقدر تجربه داریم فکر کنم یه دختر در وقت دارن که انقدری ازشون تعریف میکنی اتفاقا درست فهمیدی دختره عین پنجه آفتابه داره با بابا باباه زندگی میکنه پس مادر نداره دیگه مادرش فوت کرده پدرم دیگه ازدواج نکرده آ راستی دختره دست خونده است یا خونه داره مجید چون آخه من که نرفتم خاصگاری بفهمم دست میخونه یا خونه داره این چه سوالایی از من میکنی آخه مادر من تا تو اتوبوس میشینی از یکی خوشد میاد ترتوه تمام زندگی شده در میارید چطور شد از این خوشد اومده اصلایی تو فکرش نبودی من پشت این دستم داغ میذارم تا زمانی که خودت نخوای به هیچ عنوان من برای تو خواستگاری نمیرم مگه اینکه خودت مشتاق باشی <تصفيق> تمام دهن ببند اتفاقا همه چی تمومه پرسو و پدرش نشستن میونه اصفا بساسیه و بودن قضا میخورن بابه به چیزن دگی اون درست کردی؟ بخورن که پر رو خور نکن زودم زرفاشو یا خورشید به برای آقارمون نده ها دقل پیچک رو میخوردیم تبگیری افتادم تو که دقیقه این پیچک رو گرفتی عزیز من نمیشه با چه زبونی بگم مجید پیچک رو دیده او وقت بیاد اینجا ببیند تشتی آبرون رو میره یه نگاهی به این دورو برد بنداز من این کارا رو چجوری انجام بدم من بلد نیستم من کمکت میکنم یکی دورو در نون سر جیگر بذاره همه کارا درست میشه من نمیدونم اخلاق تو به رفته به شامرم به من یادم نمیره وقتی با مادر خدا بیا مرزه دروسی کردیم تو همین محله ها بودیم تو سرمای زمستون با آبه صد رخت میشد اتفاقا منم خیلی دوست دارم اه دیگه چی دوست داری؟ او صدای در اومد فکر کنم خوشید و مجید اومدن کمکمون زود باشینا رو جمع باشی. من چی کار کنم تو یه چوب برده بزن تو سر من آبی. باید دم مادرش برگشتن خونه. بابا چند تا قف می‌زنی؟ می‌گی آلا فروشی داریم. آخ آخ فکر کنم با این وضعیت سه چهار روزی افتادیم. حالا خوبه چهار تا تیر تخته این اونور کردی آه. آه. نگاه کن چه مثل کرباس فرخورده خورده. آخ جوونی. خدا کنه توی این چهنوز آینده کسی توی این مرد از باب کشین نکنه که من حسنش ندارم تمام یه <تصفح> بندون دهن <دلده> تو <تصفح> نه نه اینجوری شد اه اه اه اه. ببینم حالا این دختران رو پسندیدی یا نه آه مادر من چی میگی طرف و ماشین آنچنانی و گل و شیرگی میاد میره میشین روی مبل خوب بعد میگه یه هفته جواب میخوا منو مرده اونچه هموالی زیرت تیرو و تخت و و کمود فقط نوک پامو دیدم بعد میگه جواب بده اینجور خواهرم میکنی مجید صدات اونجوری مثل خروس بر من نکنا اینقدر ایراد بی خودی نگیر اگر فردا جنابالی برای دیده دست کچلوار بگیرن یه دونه جب شیرنی بگیرن یه دست گل بگیرن میگه خواستگار یا نه خب بعد یه ذره بیشتر آشنا بشیم تو که با اینا همسنگی که باز من میخوام برم بخوابم. تو که بودی که یه دفعه شده سالم شدی؟ بعضی موقع میگیره بعضی موقع ول میکنه الان برو کرده گرفت اوه. اوه. مجید من فردا زوری نار نهار دعوت کردم آ. گوشت با من هست چی میگم؟ یا بازم کری مجید میره داخل اتاق خدای خسته شدم از دست این بچه این به اینجا بسیده آخه چی میشده خدا بیا با پاموشون تو خونه در میزد تکلیف منو با این مجید روشن میکرم کیه؟ برخش رو تراید بابا من پراید کجا بوده؟ پرستو و پدرش کادو به دست اومدن خونه مکی بابا من که روم نمیشه اینا رو ببرم آخه چی استکان نلبکی کادو برای که شما گرفتیم حرف نزن بی خودی طبقه داری تو دا این وضعیت که من دارم مکروفه بردارم ببرم خودتون نگیری ببینیم یه بخونجا حرفی نزنی که به سر بو ببره با نه خیالت راحت باشه ببینیم واقعا دستتون درد نکنی چقدر با شده. این چه حرفیه میفرمایی؟ قابل شما رو نداره میگه برگ سبزی صوفه درگی انشالله که بتونیم جوران بکنیم من الان خدمتتون تو میریسم با جزیم دختر تو چفشی تو نباید دربیاری بیای تو؟ بایی یادم رفته و چیکار کنم توی کردی اینجا خونه خاله مریساته سرکه پایین پایی همجور اومدی تو؟ خب دیگه حالا گرار تو نایمده نا ببر به تو پاهایو پراستو با کفش شده پاپی خیلی درد سر روز کن پاپی خودومه خب جلال اینا به من بگو با بفرمایی دستی شما درد نکنه خیلی افتادی تو زحمت ببخشی خواهیش میکنم ببخشیدی آقا مدیدی شما تشریف ندارن چرا؟ همین الان میاد رفت بیرون یه کار داشته میاد ببینم خانم خوشیت خانم یه سوال داشتم خونه مال خودتونه راستش منظره که مال پدر شوهر خدا بیامرزن بود خدا بیامرزتشون خدا رحمت کنه رفتگان شما رو الان بازار خوبه با بابت این خونه پول خوبی میدن دست فروش نذرید شما والا مجیدم به جمع اضافه میشه سلام سلام سلام مجید حال شما چطوره کاروار چطوره خوبه خدا رو شک یه نونی بخور نمیری در میان. الان آقا مزید خودشون متله هستن همه خونه ها و جدید استخر و جگوزی و سناب و به همون همه چی داره اه، البته شغل من چیز دیگه ایه یعنی شغل دیگه ای داری؟ البته مجید جون مهندسه هر دفعه بهش میگی بابا جان از این درد داری میری بیرون یعنی از این کیف میگه که از بندشو میندازن یه که دودی این کیفره بنداز یه خود مهندسوار را برو به خرجش نمیری که نمیری البته من بگم خدمتونی یه چین همچین بچه به نفهمی خاکی به بابای خدا بیا مرز مهندس چی؟ نقشه ساختمان خوندن البته بیشتر اوقات شبه کارو انجام میدم چه جاله؟ چی؟ این که مهندسین دیگه مامان ایه. یه دادگاه تا شیفین کرد تنگ ماجید از روش بوله میره داخل اتاق مادرش هم دنبالش میره جان این مرد اینجا چکار این مرد اینجا چکار میکنه من به تو من سه دزدی بیرون که همینو و من بگی نه نه اینو نمیخواستم بگم. در حیاتو باز گذاشتی؟ یکی دیوونم که در حیاتو باز بذارم. اومدم دقت کردم کفش بابایی دمی در بود، کفش دخترت هم در نبود. خب نباشه. روت پاشه. دقت کردم کفش تو پاش نبود. فکر کنم در باز گذاشتی دو اومده کفشو برده. یعنی واقعا با چشمای خودت دیدی کفش پاش نیست؟ بله. خودت بر سرت کنم چه خاست تو سر میزنم الان؟ میدونم. یه یا برم یه باشی باشی بگم که نترسی ما خبر مرد جماله شده بچی خواهی تو سر اون سر چیز باش. باش اون سر باشی اون سر باشی خیلی خوب بنام دون تو خیلی خوب بله خیلی خوب واجب نیبرشی خایش. شما باید بدوشید. پرسود جون، واقعا از رو تو من خودم یه جفت کفش قشنگ مجلسی براتون میخرم اسکال نداره اینقدر کهنه شده بود، باید مینداختمش بیرون. اصلا <تصفح> <تصفح> کفش ارزشی داره. شما خیلی زحمت کشیدید. خواهش میکنم حتماً با اجازه‌تون. به سلامتی. خداحافظ. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. به آخر پرسود پدرش میرم. پرسود دمپایی پوشیده. با دیگه صحبت می‌گی، کینگ. تمام. مجید بله تمام بی تمام وقتی میگم دهنه به ببند تمام بارو تو خجامت با نمیگه <تصفح> شده. مجید کنار حوز روی تخت نشسته و به فکر فرو رفته مادرش میاد کنارش روی تخت میشینه شما هم نخوابیدی؟ تو چه نخوابیدی؟ من خوابم نورد چه؟ به فکر پرستو هستی؟ پرستو کیه؟ یعنی چی؟ سرطوله یادت رفته؟ آه پرستو باشم بیم خوب ذهنتو مشغول کرده نه اصلا نه پس تو اینجا نشسته داری به کی فکر میکنی؟ مجید تو رو به علوه خاک پدرت من فردا با اینا قرار خواستگاری گذاشتم یعنی چی؟ بادر من منی که میخوام یه عمر با یکی زیر یه سخت زندگی کنم حق اینو دارم که ازش خوشم بیاد یا نه آخه من که تو نمیگفتیم که باید با, با هم دیگه همزنگ باشیم خب هست دیگه دیگه چی میخوای؟ مامان یه چیز بد بگم باورت میشه بفرمایید تازه فهمیدم همسنگینم ملاک واقعا نمیدونم عدالت تو چیکار کرده ای خدا چرا اینقدر کاره خدای خوشباره دیگه آخه مجید از جاش بلند میشه و میره خدای این چی شانسی بود نصیب من کردی پسر سو پدرش تو خونه بابا میگم ما میخوایم اینجا بمونیم تا وقتی این پسر همه میه بیاد خواستگار جنب کنیم اومدیمون دلش نخواد بیاد خواستگاری هم ما چه بانه کردیم ما تو این شهر زندگی کنیم ای بابا تا خود من برم خواستگاریش و بیاختیم تحمول کن میاد دست نمیزنیم من ببینم چی. مادر نجود اومده دم سلام سلام خورشید خانم بفرمایید خیلی ممنون ببخشید آقا جنگیر اومدم به عزیداشم خدمتتون خورشید خانم تا اینکه بفرمایید نه خیلی ممنون کار دارم بعد بدم در خدمت شما اومدم بهتون میگم که مجید رو می‌خواستم بگم آقا مجید بله بل. می‌خواستم بگم که واقعا رون سیا شردمندم نمی‌دونم چی جی بعد بهتون میگم اصلا خودتون رو ناراحت نکن قسمت رو نمی‌شه کاریش کرد داری چنگ می‌زنی سلام کردی من با مجید روحت نه نه نه اصلا ابدا دیشب که راحتو علنی داش تو روی من بای میستوری کله کله معلومه چه خیلی خوشایند خوش دراز کردی اصاب من با روسیه خواهش بک کن به خیلی شما. من خدافظ شما خداحافظ سلام برسون سلام پدرت هرسو برق می‌کرد داخل بابا کی بود کی بود خورشید خانم بود چی گفت؟ پسری یه فکر کرده مهندسه خبریه. چطور مگه چیزی گفت؟ آقا می‌فرمایم نمی‌اوم خواستگاری گاری. نمی‌واد؟ یعنی گاجرابولی خوششون نیومده. شه. چرا تو هم می می‌دوزین؟ ولی شوهرت مرده. میاد بازی به با هم می‌ری. بابا میگم اصلا نگفت چرا از من خوشش نیومده؟ مگه برای تو فرقی میکنه ببینم نکنه تو اب بسر خوشید اومده من؟ نمیدونم میگم برخواه از این خراب شده میری الان دیگه بخیانت راحت باشه افشوره بدر پرستو داخل ماشین نشستن و دارم با هم صحبت میکنن هی داده میداد خیلی برد شد خیلی خوری نمیشه. بعد یه فکر اساسی کرد چند روز دیگه موعد چکا میرسه، مام آه در بساط نداره. درست چیکار کنیم؟ همینطور بشینیم دست رو دست بذاریم؟ فهمیدم. چتی، فهمیدم چیکار باید بکنیم. یه را بیشتر نداری به شرط اینکه فقط کشش ندی. خیال جمع باشه چشش نمیدم فقط بگو چی کار باید بکن تنها راهت اینه که از خود مادره خواستگاری کن چی؟ آقا رو شدی؟ مسخره میکنی یا ما رو گرفتی؟ مرد استو من برم مادره خواستگاری کنم؟ از خرچیتانو؟ بله چرا حالیت نیست؟ برای نزدیک شدن به اونا راه دیگه این نداری این چه حرفی میزنی؟ نمیگن توی هاگیر و ها یا آقا فیلش یاد هندسون کرده نمیگن؟ اونم کی؟ من وقت چی باید یه باروشونو بدم؟ درد میگم چی بهش بگو تو فقط کشش نده همین امروز زنگ بزن باقیش با من باشه پدر پرستو زنگ زده به خونه محجیدینا الو سلامت کردم خوشگید خانم آبا چونگی شما هستی؟ خواهش میکنم راستش خرشید خانم من میخواستم یه مطلبی خدمت شما عرض کنم بفرمایی منطقه چه چجوری باید بگم من مدتاست که یعنی من از شما خوش به لکنت افتادم خرشید خانم شما با من ازدواج می‌کنیم. خرار کردم تو. مجید داره موهاش رو با حوله خوش میکنه مجید مله میگم که کارت این دختره رو داری بدی من یه دور دیگه باش تماس بگیرم شماله رو بهتون بدم که این دفعه قبل هرچی چی بعد و بیرای به اون دختر از همه به خبر بدین ها نه بابا میخوام ازش آسخایی کنم چیزی شده؟ نه مامان شما را کسی نشتسته من شما را خیلی خوب میشستم بین بگید چی شده نه یه چیزم ولش کن کیو کیو برکنم جهانگیر با کمال وقاحت و پروی بعدش زنگ زده داره از من خواستگاری میکنه آه نه می‌ره. به ماجی، آ ماجی دل‌ها رو دست خالی برو. مجید پیرنش رو می‌پوشه و میره خونه‌ی پرسوت. پدر پرسوت درو باز میکنه مجید باهاش گلاویز میشه و سر جهانگیر می‌خوره به دیوار خون خونریزی کنه. مردم واسطه میشن. از بیا بیا بیا کمک میکنم. سه قرص. نماد چهارمی کاش پسش. باشی کار انجام داد. باشی کار. کار. باشی کار. باشی کار. باشی کار. باشی کار. باشی کار. باشی خدا مرگم بده آقا جهانگیر تو اینجوری کردی؟ کچالت نمی کشی؟ مهندسی؟ آقا چی شده؟ برشمین تو یه برش آقا یه برش من میگویم آتو برشم زیاد درشوستن رو میبرن بیمارستان مادر مجید رفته خونه پرستوینا ایادت جهانگیر بفرمین آقا جهانگیر واقعا دستتون در نکنه شرمنده کردین ما رو خرایش میکنم آقا جهانگیر شما روزی چار پنج تا آب میوه بخوریم براتون بد نیست چون خیلی خونه زیاد از سرتون رفته واقعا افتادی تو زحمت بباشد چه زحمتی آقا جهانگیر من واقعا شرمندم خدا منو مرگ بده که شما رو اینجوری تو رخت خواب نبیدم. خدا نکنه. اصلا شکستن سر برا من اومد داره باور کنید خوشید خانم تو زندگی دو دفعه سر من شکسته یه دفعه وقتی رفتم خواستگاهی مادر پرسو برادرش زد سرمو شکست. ولی وصلت سر این دفعه هم که آقا مزید لط کردن سر من شکنه مهم که دل کسی نشگنه من من یه مقدار سوپ درست کردم آماده شد میارم بده آقا جانگیر بخورم شما لط دارید با ایجاز. مادر مجید میره خیلی زن محرم خیلی با محبت اخلاقش عین مادر خدا بیامور زده وقتی چکاتون پول نشد انداختنتون زندون اون وقت اشخواشقی هم دیگه از سرتون میره فکر اونجاشم کردم وقتی حال و روزم بهتر شد خوشیدم بله رو گفت حلش نشیم ناراحت نباش نمیفهمم شما واقعا میخواییم باش ازدواج کنی؟ اله که میخوام ازدواج کنم مگه ازدواج واقعا و غیر واقعا داره دختر؟ ببینم یعنی شما واقعا فکر میکنی اگه خورشید بفهمه که شنخشوی تو کلتونه جواب بله رو بهتون بده خیلی خوش خیالی. مجید نشسته تو حیاتو دستاشو گذاشته روی سرش کجا بودید؟ چی گفتی؟ کجا بودین؟ به تو یاد ندادم دنجال بزرگتره بلشی وایسی؟ اول از این به تو ارتباطی نداره که من کجا بودم؟ دوم از این میخوای بدونی خونه اون جهانگیر بدبخت بودم که زدی سرشو اونجوری لطو پار کردی شونزده تا بخیه خورده سه من؟ تا اونجایی که یادمه همیشه ادب و نزاکت رو به تو یاد دادم نمیدونستم امروز وای میسی و یک سلام تو دهنت نیست بابا دیگه حق نداری خونه بری حق؟ ببین کی داره از حق بر من صحبت میکنه من خودم میدونم حقم چیه تو نمیخواد بر من تاین تا تکیف کنی <تصفيق> یه دفعه بگو میخوای زنش بشه دیگه خفشو حق من حق من سی سال یتیم داری بود حد من سی سال بار تنهایی رو به دوش کشیدم بود تمام مسئولیت خونه با من بود حق من گوشه خونه نشستن تو تنهایی عشق ریختم بود مجید کتش رو از خونه میره بیرون که یه دفعه افشار و چیچک میبینه که دارن میرن خونه پرستو اینجا چیکار میکنه؟, ای؟ ای پیل ای ای میکنه؟ اه این پیلی زنه؟ اینو خود گرده؟ این نقونیه که کیفو پیدا کرده بود؟ ولی این دوتو با همینجه چکار میکنه اینجوری نمیشه باز یه فکر کرد این قضیه داره کشتر میشه دایی جون منم هم همینو میگم ولی پاپی که گوش نمیکنه. باز گفت پاپی دایی جون ما همیشه هر وقت رو هر زمین و خونه ای دست می زاشتیم. یه هفته نمی که به چنگش می آوردیم ولی این یکی داره کشتر میشه. آقای افشار باید ببینیم قسمت چی میشه. <تصفيق> آقا جانگیر به سلامتی شنیدم آشق شدی مبارکه لکه نه خیلی پاپی جون منظور پیچک خانیم اینه که شما تو این سن و سالتون خیلی جالت نه اتفاقا هیچ هم همچین چیزی رو نمیگم بابا بزرگم هشتاد سالش بود هشتمین زنشم گره مبارکه آقا مبارکه اینه چی ها اینه چی من نمیدونم چی کارو میخوایی بکنی و چه فکری تو اون کلته ولی من یکی دیگه نمیتونم جواب تو بدن ای بابا اه تو زورت به طلبکارو نمیرسه بعد تو دیر میدی؟ مجید یواشکی از ماشین پیاده میشه. پر از افشار از خونه میان بیرون و سوار ماشین میشن. مجید جلوی یه موتور سوار میگیره. و و بروب. کمی بعد داخل یک کوچه ایستادن و منتظرند مجید جیدانش هسته و صاحب موتور پشت سر اینا اینجا چیکار میکنن؟ چی؟ بده بلندتر رو که من گوشم گرفته میگم فکر کنم یه کاسه زیر نیم کاسه باشه آقا من نمیدم این موتور من رو بده من برم من دیدم شده افشار سارا افشار سارا افشار اومدن اومدن شیبالا بشیبالا اومدن افشارو پرسته سوار ماشین میشن مجید میخواد دور بزنه که با یه ماشین تصادف میکنه ماشین پیاده میشه همون خانم جوانی که با مجید تصدفتان بود، البته با یه ماشین دیگه شما اینجا چیکار کار میکنی؟ ما, ما داشتیم ما داشتیم با هم دنبال آدرس رس میگشتیم. نه خیر داشتیم دنبال ماشین میرفتیم تو مگه گوشات نگرفته بود؟ ها؟ چی؟ تو مگه گوشات نگرفته بود؟ من یه حضب حالیم نیست خانم پول همه من برم پوله چی؟ پوله چی؟ ببرای در موتورو نه الان پوله تو میدم بده من برم دار بیدار درخوا بده همه شو بده همه شو خب بیا بیا تو گوشت میشنمه؟ صحبت پول میاد؟ نه برو برو, برو, برو, برو, برو. اوه اوه چرا شما حساب کردین؟ اجازه بدیم من کی فهمو بیارم الان به تو میدیم نه نه نه اصلا امکان نداره ها شو کنم این چه حرفیه میزنید شما؟ میگم دوستتون ناره نه نه مشکل شنوایی داری گوشش یه ذره باد گرفته بود یه همچیز زنگی شده بود ام. آخه کاش تلفن تلفنمو بهشون داده بودم اقلا میتونستم معرفش کنم توان بخشی چه جالب شما تو توان بخشی کار میکنی؟ من نه خب به صورت افتخاری چرا رم آه چه جاله؟ چه جالبه؟ آه, اه، من معذرت میخوام شما اینجا چی کار میکنی؟ من خب خونمون اینجاست کجا اه این جالبه چه دقیقا فکر کنم آدرسی که ما دنبالش میگشتیم دقیقا بغل خونه شماست اه چه جالب اونجا خونه امنه اه آه, آه؟ نه چقدر در شبیه همه این دره است دنبال اینجا یه خونه دقیقا بین خونه این دوست ما و خونه شما فاصل است آخه اونجا خونه عمومه دیدی ببخشید اینجا کوچه چیه؟ اینجا کوچه شهریوره. من دو تا آه آه من دو مال کوچه مرداد می‌گاشتم. آه مرداد آه مرداد دو تا کوچه بالاتر. داری میگه آها آه بله بله دقیقا دو تا کوچه بالاتره از اینه به هر حال ببخشید که آسیب رسوندیم به ماشینتون. اگه نیاز به صافکاری داره من آشنا دارم. آه. من خواهش می کنم چیزی که نشد آخه شما ببخشید. بله من منم هیچ نشد به حال ما رو ببخشید. با اجازه تون خواهش میکنم با با خدا خدافس. زن جوون سفر ماشین میشه. مجید برگشته همه افشار تماس خودم هستم جدن نهزه اینکه که تازه سر عقل اومدین نگفتم کشش ندین آخه فی زمین یکم خودشو کشیده پایین پس قرار قولنامه و مسائل بعدیش با شما بارسه فقط کشش خدا خدافر مشتلق بده که همه چی رو؟ چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ همه یه کارا درست شد جدن؟ پسر همونی حاضر شده همونو بفروشه بابا یعنی که یه ذرم از این خبر خوشحال نیستین؟ خوشحال بشن. برگشتن خونه پیش واسه, واسه اینکه باید این نمایش جمع کنیم آقا رو تازه نمایش به جای حساس و خوبش رسیده بله دیگه نمایش است به جایی که مرد آشق شده با چی؟ با چرت آب میوه و سوپ و اینجور چیزا باز خوبه معرفتش رو داشت جور اون پسرش کشید عاشقم من مرد حسابی در روز دیگه موعده چکاته به جایی عشق و عاشقی پاشه بریم دفتر جواب طلبکارا رو بده هجام و بیا من این حرفا حالی نیست من میرم تا موضوع کش نیومده و پسر منصرف رشده میخوام جور کنم همونو خودم بخرم نه ببین افشور والا غیرتن اون زمین مال بچیای یتیمه هر چقدر میارزه پولی که بهش بده دای منم میام تو کجا میری اینجا بمونم برای چی از اولش هم دوست نداشتم اینجا باشم منو به زور آوردین اینجا باش بریم, بریم. ای داد بی داد ای داد آقا جهانگیر ای داد بی داد کی کنم بخواد بری شما ولشو نه بابا کی میخواد بره آقا جهانگیر من الان دارم میسوزم میخوای چه جواب این طلبکارا رو بدیم مرد حسابی نادار که نیستم پیچک خانم. دو تا ماشین افتاده تو خونه. یه ساختمون نیمه کاره داره. تو که میدونی یه خطو خورده حسابه بانکی داره. خب اینا رو جمع و جور میکنن جواب طلبکارا رو میدم دیگه. والله شو، بازم خدا رو شد رو سفید میشی به به. پس بفهمم، بفهمم خاهم ما رو بدبخت کنین دیگه. تو تونجو فالگوش واسدی آقا جان گیر این اولش کنی از پنج سالگی عادتش بود 23 ساعت پشت در اتاق خال گوش با میساد برفریده باشه بخند پاراسم اومد دم که با مجید برو میشه به پرست پرستو خانوم به سلامتی در فرار میکنین دیگه رسی باباتون کو فرار حتما دست تو گداگوشته غربتی اولا مووازبه حرف زدنتون باشین دوما گداگوشته شما این که خاطر یتی که زمین خودتون به هر شکل و قیافه در میارین بیخود سراتو سلط واسه من بالا نبره سلام آقای افشار. یه دفعه افشارم از خونه میاد بیرون خاله شد زبون نداری یه ندا بدی این پسر اینجا هاست. چی آقا جون دنباله چی میگردی همه ی ها از زیر سر اونی بلند میشه که اون خونه هست بابای بیچاره من چه گناهی کرده شما بودی که همش بهش ختم میدادین دیگه من؟ من آقا جون یه شاگرد پاده بیشتر نیستم الان هم اومدم تصفیح حساب کنم برم. حیف اون سارا که دختر شماست <تصفيق> بله شما سارا رو از کجا میشرسید؟ چیه؟ چه خبره بابا؟ بابا آقا جهانگیر جهانگیر میاد داماد. آقا مجید جون اون مادرت آبروی من تو این محل نم هر حرفی داری تو، من خودم نکره خواهش میکنم، نمیخواد نراحت بشی بفرمین تو، بفرمین خودش کن بفرمین بیایی بیا. آره آقا مجید کلمه ماجیرا همین بود کن پس اینجوری میخواستی مادر منو خوشبخت کنی نه آقا این دفعه فرق میکنه باور کن مادر تو برای من از همه چیز دنیا مهمتر آقا قسمت میدم تو کیسایی که دوست داری آبروی منو پیش مادرت نبر. این ماجرای همون زمینو بهش هیچ نگو. شخصیت من میشه. فراموشش کن. گل به دیدا مادرت خوشبخت کنه، از گل تر بهش نمیگه. گل میدم. باشه. ولی یه شرطی داره. قبوله. هر شرطی باشه قبول میکن، کنم. این شرطم باید بین من و شما و آقای افشار واقعی باونه قبولید قبولید حالای چی هست؟ باید بریم بیرون. یه دوری بزنیم اینجا بهتون میگم قبول فقط یه چند از سبت و رو گواست یک سال بعد مادر مجید و جهانگیر و افشار سوار ماشین میشن و میان سرای سالمندن خورشی آنو قدران بیری شد شما اجازه بدید من کارمو داشتم می‌کردم بفرمایید ویدا سارا از ماشین کیدی میشه؟ به افتخار بابا کجایی یه ساعته سلام حال شما این, این, این کارش چیه چرا خجالتمون میاد واقعا بهت تبریک میگم قربونت چی رو بده چی رو بده دست شما درد نکنه مامان امکان نداره من که اصلا بلد نیستم بهجور من خانم یعنی چی بلد نیستن وحید خانم خدا، افتخار خوشیشانون در. خلاص. سر رو شیرینی و کک میگیره بیا. تو شما افتتاق کنی رسیده خیلی داد مجدد. میگنوا ها. نه نه به نام خدا. سالمندان خوشی افتتاح میشه. همه میرن داخل. داخل ماشینه میخواد گوشش رو جواب بده که گوشیش میافته کف ماشین تو یه گوشه نگه می‌داره تا گوشش رو پیدا کنه که یه دفعه یه خانم موسن میزنه به شیشه بله کوفله مادر مگه قراره باز باشم مادر جان جور سوار بشم یعنی میخوای سوارشی؟ شیم من گفتم مستقیم شما هم نگه داشتیم من سوار بشم دیگه وای سوارش خانم خانمه موسین سوار ماشین میشه و دوباره همون بسیم گان عزیز رادیو نمایش فیلم ثروت خفته تقدیم حضور شما شد اما همکارانی که در تهیه این برنامه بندر یاری کردن جنب آقای فرشاد آزنی ها کننده و سردبیر جنب آقای علی هاچین و صدا بردار و بنده هم نگین خاج نسید نویسنده و راوی تا فرصت دیگر همین شما رو به خدای بزرگی سارم خداوند یار و نگهتارتون